بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب الان صلو اللہ على سید و رسول الله و آله طیبین و خاطرین المعصومین و لعت الدائمت و علی عدائه مجمعین اللهم فقر آجمی المشتقلین و الحمده برحمت که آرحمن راحمین که بحث راجع به روایات تنجیم بود یعنی کلا بحث تنجیم بود گفتیم افتادا متعرض روایات بشیم تا بعد ببینیم نتیجه نهایی که از مجموع روایات باب استفاده میشه چیه گوام که باب 24 وسائل ا از روایات و اورده ایشان این قمریه 8 همین باب که دیروز خوندید قال و قال علیه السلام از اینجا صدوق به عنوان علیه السلام داره که نمیدونم الان مراز علیه السلام از کدوم امامه احسابه این رسول الله باشه اما بعیده چون قبلش امام صادق این جانبه امامه این جانبه این کدومی که از کدومی که از این نصف المنجم و کلکاهن و کهنو که ساهر و ساهر کلکافه و کافر از سرم فعلا سند این حدیث الان موجود نیست اما این شادا ترداد امروز که دیگه برای بایده باید باید باید باید, باید, باید, باید, باید, باید. پردا در جمله روایاتی که از امیر روین اینوا سابقه متعرض شدیم. یک روایاتی از زمین در جنگ نروان که یک منجیی به حضرت هست کرد در این ساعت نه و این شکست میکن چه میشه که ند که روز میشیم و همطورم شد که از هم روزدن. توی این نقله های داره این روایت مزامین متعددی داره کوتاه و بزرگ مشه یه مش هم در نحد باق آمده. این در زیل اون مهد نهر و است المنجم و تلکاهه این قراره این رو خواستان بگم بکنم دیور که سندی برش شیده نکردیم در زیل روایتی از امیر المؤمنی سرات الله علیه این رو ما اعرض کردیم بنا جز روایات آمه شون یواش شواش به ازن الله تعالی مخیم بارد دستبندی مجموعه روایات هم بشیم یعنی اصلا رو روایات رو دستبندی روایات اون شماره هشت و روایت شماره یازده من صدقه باندجی من اینها جزوه روایات عامنه است. حدیث شماره دوازده ایشون از مرحوم سیدیم تابوس در کتاب استخاراتش چاپ شده سابقا تا مدتا چاپ ناشده که ربانی هم نویشته لب نسخت هم مفهوم مفهوم مفهوم در هم متوفر دروازات چاپ شده به معروف است به فتح خلیعه ارباب بین العرب و رباب اسم کتاب فتح خلیعه اربابه. که هم اجمالا بهش استخارات شد. کتاب خوبیه انسان، خب چون مصادره کردیم تو اون زمان میخوره، ولی راهم با مصادره کرد. ایشون در این کتاب در جای دیگه هم از این شخص نقل نکرده. دو مورد به عنوان اشی خل محمد بن علی بن محمد در یک گیان شفی فی کتاب عمل یک گیان رشته جامه کتاب جامه لفوف الامر نه خود این شخص خیلی شناسایی شد که کیه محمد ابن علیه محمد و نه این کتاب شناسایی شد و این مقداری که ایشون توصیف فرمودن و بایان فرمودن کمه البته بعضها در بعضی از کتاب مثل ریاض اسم ابن ابي قرره ای که از علمای بغداد ماست به نام ابن ابي قرره مرحوم محمد ابن علي ابن ابي قرره این چست فازلی فاضلی فقس و کتاب معروفی هم در اعمال شهور داره عمل شهرمزا که این مناجات شعبانیه رو ایشون نقل میکنه این مناجات شعبانیه معروف که چون بعضی از ها و دعاهارو ما در دین ما سنداش نقل نمی‌کنه ایشون مرسلا نقل می‌کنه عنوان مناجات اهل محمد بن علیه بن عبی قره قلنائی. این اطراف بغداد بوده استاد مرموم نجاشی همه نجاشی دیدهش رو از احتمال هست این باشه لکن او اسمش محمد بن علیه ابن محمد نیست حالا احتمال در یک احتمالی و مرموم سه از اون آقا ابن عبی قره در اقبال خیلی نقل کرده سی مورد شمورد خیلی نقل کرده از اون شخص ابن عبیقره اما از این شخص با این اس فقط همین دوتا فقط در استخارات جای دیگه نقل نکرد و اونم اسمش محمد ابن علی ابن یعبو برزن محمد نیست یک اشتباه یایشون یا کردن یا ما نیمی فهمیم بلاز به هر حال بلا نخلی نخلی که تاب الامل لهم که تاب اون عمل شهرمزانه این, این عمل مختصر اون کلمه منس به هر حال فعلا نه این معنیف رو میتونیم تشتیز رو دقیق بدیم صاحب ریاض اسم ابن عبی قوره رو نوشته محمد ابن علیه محمد نکنی اشتباه حساب بیار اسمشو محمد ابن علیه محمد نیست هر حال فعلا نه این چخصو میتونیم تشتیز بدیم نه اون کتاب رو دقیقا کتابای عمل اصلا اسم کتاب کتابای عمل کلی اسم عجیب قریبیه نه اون کتاب رو کتاب, جامع جامع کتاب, من کتاب جامع و هم روشن نیست این دو مورد در کتاب استخارات این شخص و کتابش روشن نیست مضافن به این که مرسل هم نقل کرده یه خیلی مشکلی زیاده او به صادق علیه سنو دارنگار اون دعایی رو او برده قبل از استخاره خیلی هم طولانیه ما بعضی از عدیه طولانی داریم در غذاها حاجی یا استخاره اما این خیلی طولانیه یعنی چند صفحه است که قبل از استخاره امام میفهمیدن باز تازه ازش هم دو قلوره هم داره هم دو چار قلوره و از هم تبارک تمام سوره تبارک کنده داره که میخونه یک حالی یک جور خاصیه میفهمم. نه گفت اسم محلقش معلومه نه اسم کتاب معلومه نه سند داره نه خود اون دعاه خیلی برد روشنی داره یعنی هیچ دلگرمی آدم به هیچ جشنه داره الال اللهبل که ق خلف اقوااً یا جوون اعلامطال ننجوم لعوقات حرکات هم و سکونه هم و خلق ابرا و من نجعلهم این محل محلشادهشون اینه که عدی هستن روی نجوم حساب میکنن و اننی ابرا و ال من نجع اله من به اونها پناه نمیبرم. احتمالا الهم به قوم برگرده اما بله. احتمالاً علیه ها بوده یعنی به نجوم باید برگرده چون داره من طلب الاختیارات به این اختیارات به یعنی به نجوم ایغن داره باید قالباً اوغنو باید باشه ایمن اوغنو و هنکه لم احدا اهدن علا غیده که پی مواقعها و لم تسهل لحو سبیل علا تحصیل افائیله ها و هنکه قادران علا نقلها پی مداراتها انسعود الامه والخواسته سعدهان و سعده خاص مراد به عموم بشر و عموم کار زمین یا خاصه به فرد و عنه نحوس شامله المزره الاسعود لعنه که تمهو ماتشا و چسبه و این دکه کتاب این رو مرحوم سهیم در کتاب استخارات بوردن و عجیب اینه که در کتاب نجومش نه بوردن چون در نجوم مخانه نجوم ترید بکنن توی کتاب فرج المحمون که در علم نجومه این رو ننموردن تصادفا که هم عجیبه اما تو کتاب استخارات مناسبت استخاره این قسمت رو آورده صاحب و سالم سا چون مخالف با علم نجومه این رو اوورده برای استفاده همین مطلب که از این مطلب معلوم میشه که کسی بر غیب اطلاع نداره و کسی نمیتونه حقیقت نجوم رو بفهمه لم تسل احدا و اصولا خداوند متعال یم حمای شا و یوسف همینه فرض کنید حرکت این نای شهراله زلاله ده باید. اینکه این کار سعد تساذفا نحس میشه نحس سعد میشه تم ماتشا ما اسعد تمن اعتماد على مخلوق مثل مثل یک مخلوقی مثل خودش که نمیتونه بس تبعت دل اختیار نفسه ولا اشخیته الاخر از ایشون این قسمت حدیث رو برای مدعای خودشون خب یواشواش وارد تقسیم بندی روایات میشیم یک سرشون تا اینجا روایت عامه اصطلاح ما روایت آمه منجم و تل و ساهر ملعون اینا دو روایاتی که سعی شده مثلا در علم نجوم تشکیق بشه یا دروغه یا اساس مثل همین روایت. روایتی که الان خوندی ما چون تا اینجایشون از روایت آمه کم آوردن خود مرحوم صاحب وسائل از روایت آمه که تا اینجا آمده یکیش همون حدیث از نظرات نجومه نها انه نظرف نجوم من دیگذر از این مفن نهتایی رو در اهل سنت نهیدم دیدم در اهل سنت در کتاب درولمنصور از اینکه انسان مرهبی مرهبی فردا ایشالا میکنم تو برشان عبادی درولمنصور رو میخونی این روایت بود اما یه چیزی هم داشت کداری کی که ما نیست ایشالا فردا میکنم و مضافن به این که ان نظرف نجوم مستقلن هم آمده نه ان نبی آمده نظر مستقلن آمده این شاء الله متعرض میشین که مراد از نظر بینی نجوم صاحب وسایل نظر در نجوم برای تعلم ایجونجوم گرسه. و که ممکن نظره نجوم یعنی انسان به ستاره ها نگاه بکنه از راه ستاره ها تشخيص بده. چون مردم در عرب جاهلی از دیدن بعضی از ستاره ها تشخيص میدن که این شاء مثلا باران خواهد آمد، امشب باران میاد که ان بعد عرض کنه. چون در خود قرآن این مطلب استعمال شده این هم یک مطلبه چون بعدی خواهد آمد از الان یعنی توارد وارد بشیم یک از روایات ما یک اشعاری به آیات کتابی داره. این هم یک تایفه از روایات ما که اشعار به آیات کتابی داره که مناسبه ما هم آیاتی کتابی رو متعرض بشیم هم ببینیم این اشعار دلالت میکنه یکیش اینه که اشعار داره با آیه مبارکه تنورن نورن نورن تنیز نجون مادر اون نظر نظر سنت نجوم مرا تعلم علم نجوم نیسا اون نظر نظر الیصرهیم فنظر نظر سنت نجوم و قال این حقیم به نجوم نگاه کرد و من مریضم بیمارم این نجوم در اینجا اصطلاحاً این میس من اون سال این عبارت ان نظر فی نجوم برای تعلم علم نجوم گرفته خوب دقت بکنید تاکنم بشعر امارت بوشهر بایی مبارکه است فنابر نظر نظر به نجوم اون قطعاً برنامه علم نجوم میشد از تمام نجوم میات نگرا مراد نبر نظر به نگاه به ستاره ها کرد چون هر تلاوی در بابل بود و بابلی که از مراکز ارساد نجوم بود اصلا که از مراکز تعلم نجوم خود بابل بود و هر حال من از روایت عامه ای که اینجا آمده در با من حالا عرض کردم اون بحثو بذاریم برای بعد. میدونم گذاشتم برای بعد. این یکی پس یکی روایات عامه حالا روایات عامه در این باب که ما خوندیم بگیم یکی حدیث قاسم نذر الرحمن تند تند تحریقات سنلیش هم بگیم. این حدیث عرض کردم ضعیفه. پیش ما هم که آمده از سر غره سنت آمده ان نظر به نجومش یکی حدیث بعدی بود که به اصطلاح این سندش خوب بود اند ایمان به نجوم و تکذیب به قدر این هم جزء روایت است این در کتاب خسال بود در کتاب مشهور ما نبود سندش هم معتبره احتمال دادی مراد از ایمان به نجوم یعنی به حساب مادی گرایی یعنی مادی فکر کردن به فلسفه مادی رو اووردن این هم که این بود یکی دیگه هم شماره هفت بود که این سندش مقدار گیر داشت اصحاق ابن ابراهیم واضح نبود این المنجم و ملعون و الکاهن و ملعون و ساهر و ملعون این روزه اطلاقاتی این سندش گیر داشت و در کتاب ما نیامده الا در کتاب کافی کتاب اقرد کتاب کافی فقط زیرش آورده این صدرم نیامده و صدوق هم در کتاب دیگرش نیامده یکی هم قال و قال المنجم و كالكاهن و الكاهن كالصاحر این در کتاب خسال آمده، و مرسل و در کتاب نرج بلاغن ز یکی از اموری که بعید رو مومنین با اون شخص فرستادن اومده اینم به لحاظ سندیش یکی از حدیث شماره 9 که این بعینه حدیث شماره 5 خطا شده اشتباه شد یکی هم حدیث دال به اصطلاح شماره یازده من صدقه کاهنن و منجمن از این زمان یعنی زمان محقق و علامه و شهیده اول و شهیده ثانی دیگه این حدیث آن مشهور شد تو و فوقای ما این اینشالله بقیه که بعد از این من اینجا که مرسده کاهنن و منجمن فاقوبه کاثنون به ما اون زل علامه همه این شماره دوازده و شماره سیزده هم تقریبا دلالت میکنه خیلی در اطلاقات نیست این راجبین مادام همین کتاب وسائل این چاپ در خدمتونه هست این باب 24 بود باب 26 رو بیاریم محمد ابن علی ابن حسین به اصناد یه یعنی انشوعیب ابن واقع این در جلد چهاره به حساب تقیی محوم تقیی حدیث بسیار طولانی او به نام منان نبی نه هم نبی و هم کذاباته در حرف جریه ترکیه جریه مفردازش هم روایات مختلفه این شعیب ابن واقید این حسین ابن زید ایشون پسر زید شهید که کوچیک بوده بچه بوده حضرت آوردن رو بعدم بزرگش هم نزدن صادق این آبایی فی حدیث المناهی قال ان رسول الله نهى عن اتیان ال اراف اصطلاح خواهیم گفت همجوری اینو منجم بسته چند تا اصطلاح داره که برخواهیم گفت بله قال من عطا و صدقه او. این شماره یعیاتون باشه شماره یازده گفتم من صدقه منجمه فقط کفر این یکی از متونونه این شماره یازده اون با من صدقه کاهنان و منجمه این یکیشه من عطا و صدقه او. فَقَدْ بَرَّ امَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ الله عليه عَلَيْهِ وَآلِهِ این حدیث هم سندش ضعیفه. همشا ابن واقد روشن است کل سند خراب داره کل حدیث رو نظر ما جهلیه. بعض مفرداتش دون دون حساب بکنید. این هم تا اینجا را چه به اخلاقات یواشما شووال درخته‌بندی بشیم، اخلاقاتو در اینش در جلسه متعرض بشیم. چون مادام بعد مطرح می‌کنیم. کل ما دام خواهیم اقوال علما رو گفت. حالا که این جرأتیم نظر صاب صاحب وسائل را عرض بکنیم البته به لحاظ تاریخی با نظر صاحب وسائل بزنیم مثلا قبل از بهار نظر ساده‌ها در که این یعنی قرن 11ه 1000 840ی ده 823 تقات ایشان و هم هم ایشون رو بعد بگذاریم به قرن 11ه در که حالا بخویم بعد این کتاب ایشان رو بیاریم شما بخونیم اوزاد هم می‌زنه فعلا اینجا می‌خونیم در ترتیب بحثتون بده اونجا بعد کلمات علمای جهرس عقولو و فی آداب سفر ما یذل عدم جواز عمل به نجوم این ان میخونیم امروز میخونیم آداب سفر ان شاء الله ل الامر به احراق کتبها ایشون میگن امرم داریم که کتب نجوم رو بسوزونیم اصلاً خود کتاب سوزوندن که کار فرهنگی نیست حالا اسناد سهله بیت بسیار مشكله و این ساز قضایی اینا ما یک تایپه قرارش میدی یا واشاش میدی یک تایپه آ یک تایپی که به تعریفیشون عل امر به احراق کتب نجوم یه فرمانه خیلی قرار دادن معمول است انسان به احراق کتب نجوم ان شاءالله روایت چی میخونیم اون روایت داره که امام فرموده احرق کتب فوق دقت و خطاب به یک شخصه عبدالملک بن اعیان احر کتبه حالا ایشون از اون عباراتی که علی به کتبها و اون روایت هم منحصره یعنی دوم نداره ما طایفه قرارش دادیم روایت تعبیری ایشان امر به احراق کتب نشون یک جانزه انصافن بحث علمی اختضام می شد از مرحوم سال وسائل این خیلی ای درافت انتقال از نصد فتوا خیلی مهمه اشون اون روایت واحده رو اینجور کرد ولی بله امر به احراغ کتب علم نجوم در صدت که اون روایت ظاهرش این نیست نگفت سو... مثلا امرت سو... شیعانه که هر کتب نجوم دوییم به بسوزونی به یک شخص معینی که یک سوال جواب با امام می‌کنه، امام می کنه کتبه این احراب کتب به یک شخص محیط و یک دانه روایت این حکم رو از توش در خیلی مشکله دقیق بکنیم خیلی مشکل هست بگیم امام امام خودش حضور بکنیم مادش به کار بوده وله امر به احراب کتب ها این دو تا. و عدم جواز تعلوم ها الا مایوه تدابی فیدبرن او این هم جزو اون عنوان جرد سویبون منی عنوان رو مردم یه از روایاتی که ناظر با آیاته این هم ما داریم روایت ما هم داریم سنیام دارن گفتن دارید تعلیم نجوم الا ما یه به بیهیم فیبر نوبه چرا این چون اصل قرآنی داره و علامات و به نجمه هم یهددون و علامات و به نجمه هم یهددون اینشالله توضیحش خواهم داره که این احتمالاً این روایات چه از ما چه از اهل سنت ناظر به آیه مبارکه باشه لیکن همچنین که در بحث نظر را کردم اون, روایت مب... اون روایات و آیه مبارکه ناظر به علم نجوم نیست اشتباه که خیلی از داتیان و بچه ها جمعیات میدن میگن یعنی این ستاره ببین اینجا اگر این ستاره را مستقیم رفتیم مثلا به فلان ده میرسی این ستاره رو به شماله این ستاره رو به, به شر پردا که خورشید طلوع میکنه از اینجا طلوع این شرقه این مردار شناختن ستاره ها علم نمیخواد این فلهان به بچه‌ها میاد درسته فرقی نداره در ولزا احتمال در اون نظر و نبرتن به نجوم و نظر مراد این باشه این دیگه علم نمیخواد میخواد دانش من طلب علم میکنه هیئت یاد بگیره این یه علمی میبوده به اصطلاح قدیمی ها سینا و سینه که درها به بچه‌هاش یاد نمین بیز بیز میذاره بیصاد تا یک ستاری گوه این ستاری قطب شمالی است این علامتش اینه این ستاره مثلا بناتر نشه این وقتی جزنی ستاری سوحیله این وقتی ما ساید این در میاد یه چیزای اینجوری بوده این نیست حالا ایشون انشالله من حالا زود گفتم انشالله بعدم خواهیمان و یه اتی ماید الله علا ظالق ظالقیش ای همیم ما خوندیم الان ولا معارض لهو سریع احتمالا ناظر باشه به چندار تا هفتم بوده چون سنتوس از والا در نمیاد که معلوم نجومش نداره کتبش سوزوندن الان میشه حکم میاد ادا بزرگوارش یاد گرفتن معلوم سنتوس از اون طرف رفته ظاهرا این شد اما انسان واقعی اینجا وسایل خود نمیده خب واسه به واسه سنتوس میاومه اشاره میگarde ایشان ما رو واسه سنتوس گذاش خوردیم بقیتش ان و لامو آرزو لهو سری فیو مرحلی سل اون هلیس معلق داره که هدیه به صبح به شماری که ما انجام دادیم هلیس معلم نخونیش بود بله حال معلم شماریست، آن نجوم حقونی قل نه علاوه تعلق ما یوخته دو بیف شیبر و نو بهره حدیث این مطلب که به رو بر باشه خیلی بعیده صاحبا این توجیه ایشان بسیار بعیده او الاس تقییه تقییه حالا به یک معنایی مثلا مثلا یک معنایی که مثل صحاب هدارقینا مصرن الا انهو قدرویه بعد شما حالا برپست این روایه میگه اندونجوب حقه حالا اگر حقه بود چیسته نواد یاد بگیره از شزده نمیره الا انهو قدرویه ادت احادیس احادیثی بله همه و غیره ان سهره حق بون از آی قران هم میاد, لر سین میاد. در هر چی خواهد آمد لنا شک کی بی تحریمی و کذا در کاهانه و قیافه و قیافه بیشتر این بود که ما مجبور علومی بودن که اینا به اصطلاح حس قوی داشت مثلا دست یکی با دست یکی پیش می‌نوشون بود این کسری هست یا نیست شبیه این کارو چی میگن نه یه چیزی از خون از خون میگیرن نه. این شبیه این درو زاد و کذا في القياس لا و, و اما النظر فيها لا دليل عمل اما اگر انسان نظر در این موضوع بکنه لا دليل عمل لا نه خودش عمل بکن نه حکم کنه حکمت الله و قدرت و اجاز مخلوقات فنا به این مقدار که انسان بدون مثل عظمت الهی رو لما مر به حدیث اول که عزاتر و الله ولو کان المراد به ما زاد انزاله. اما یه پیش از این مقدار نه طالع و مال و اینو نه تا اینه هم دوها علا این هم نظر مبارک ایشان در جلد دوازده و روایاتی که ایشان عوردن تقییه این هم کچون اینا معتقدن گاهی تقییه فقط به مقدار ایجاد اختلاف بنشیه ای نه اینکه از کسی تقییه بکنه یک نواخ نباشه سا هم به هدایی مقدمه ای داره که اصلا گاه مثلا یک قائلی از اهل سنت داشته باشه ولو قائل از اهل سنت نداشته باشه همین که اختلاف به نشیعه بشه کافیه برس کنم که من الان ارز کردم که این حدیث المنجم کرد کاهن و صاحب کنان این اگر برهای شالو شد در در در خماراتون همون این کتاب بیاریم در حسب این کافی که مرحومات رباین جلیه هشته اول کتاب هر جلس هم این چاپ جید آلوزه جید یازده میشه اگر خواستن آن <Hajar> باب ابواب آداب و سفر در اون شماره هشتش در نحجل بلاغه هست ایشون در زیلش داره بر کاهنو که ساهر و ساهرو که کافر بر کاهنو که نام این است که مرسره شیخ صدوق در خصال آورده بود که خوندم براتون این که از که خواهد آمد اینجاست اگه خواستیم ارجاع بدید جاش اینجاست حدیث اولی که ایشان در این باب ذکر مودن محمد علی بن علی ابن حسین ارس در کتب عربعه ما حدیث کمه این سه تا حدیث که اینجا پشت سر آمده این سه تا حدیث در کتاب مرحوم صدو آمده در فقیه یکیش این اینه این حرسه از فقیه از کتب عربعه از فقیه محمد ابن علی بن ابن حسین به بن یعنی یشون برادر زوراغه زوراغه نهیت احتمالش احتمالاشو بزرگتر زوراهم بوده پس کریم نا از همین ترکیه فعلی بودن روم به اصطلاح روم این قسمت و جدتونم از کشیش ها بوده ای اع... اع... اع... سمسون کسری شهر احتمالاً مسلمان شده یا اون اثر بود فرزندانش از بزرگانن احتمالاً خود ایانم مسلمانه قال قلت عبدالله یعقوب الله علیه السلام و عبدالملک در مکه قرتش میکنه حلاهم مشهور و همون جایم درشون زمان امام ساده قلطل عبی عبدالله علیه السلام اینی قدر طلی تو با حال اله. من یاد گرفتم این ابن رو فاوری دل حاجه که اذا نظر تو اله تاله و رئی تو تاله عشد جلس و از اذهب ها به اداره رئی تو تاله عشد و تو تل حاجه فقال لی تقضی حالا طبضا هم کنده شده یعنی حکش بکنید اون اثر کردید اثر میدید قلطنان قاله احرس کتبه این چیشون فهم وله امر به احرام کتبه ها اینه اون روایه دیگه کفتیشون و ندیرم دیگه نداره باشه نکنید منحسرم یک حدیثه اون هم همینه و صدوقم فراده رو نرکده از در جای دیگه هم نیامد در خطور دیگه فردو هم نیامده فقط در من لایردو البته یکی نقطه رو من یکی نقطه سانوی که حسیمی. گاهی اوقات سال بسال یه کار عجیب قلیب میکنه مثلا یه حدیث مناسب بود خب میشه تو همون روابط باب مایفتسم اردو بود, بود ولی همون بهرام خود حدیث جوده بود من احتمال میدم یه اماندالله چون اینجا مر یه کتاب حجش یه باز رو داشته باب المحش و سفر کذا آداب المحش سفر که به مناسب حج آخره باب حجم هست ظاهرا ایشون داشته باب حجم هم صدور نگاه میکرده کرده ایشون هم توی عباب آداب و سفر رو داشته رو برده صدور هم توی منلای احضور تو عباب, تو تو عباب و سفر رو او و اونا هم که اونجه جهه خودش رو برده ایشون این روایت رو با حاضر این این روایه هست و مرم مجیستم تماید داریم مثلا که علم نجوم دایجوز و کسانی که قایی بودن که علم نجوم دایجوزی که از ادله مهم میشنم همین حدیثه چون امام عمر فرزن به احراج کتب به تعبیلشون کتب نجوم فرزن کتب آتش آتیش بزن ارز کنم خدمتون از مجلسی در کتاب بهار در این حدیث نوشتن و به سند حل حسن الفقی به سند حل حسن ام عبد الملک نحیم اصطلاح هستن که من منیزی به کار بازن در که یک راوی ها بیشه از یک راوی امامی مبدوح باشه اما توتیه سریح نداره این حدیث رو مرحوم شیخ صدی در سقیه اینطور طور آورده رو روا عبدالملک ابن یه نسخه داره رویه انه یعنی عبدالملک ابن این از موارد شبه مستاویه که رواس یا رویه این یکی باءن شد مفصل عرض شد که اگه دیگه اگر باشه ظریفه و اگر روا باشه به اون سندی که در آخر کتاب مراجعه می‌کنیم درنشه ایده هم گفتن نه فرق نمیکنه حالا اون بحثا اش فرق میکنه نمیکنه نمی‌کنه نمی‌کنه ان شاء الله جدی مفصل با متوجه شید که یه حدیثی منحصره به این راه باشه این چون حدیث زیاده و به هر حال مشکلی این حدیث داره که با این حرف حل نمیشه اینجا واسه بحث میشه من فقط چارهن خدمتتون عرض کردم ما اولین کسی که از پقه های ما ارزیابی حدیث رو در شق او خوب ام دقل که مثلا گفت این روال صحیحه ظریفه موسطقه حسنه اولین کسی که هست علامه هندیه اشتباه نسید رجال ما قبلا نویشتیم فرست نجیشه قبلا علامه هندیه که متوفای هستاد و بیست و شیشه هماله بیشونه اولین که مثلا در مختلف بگه از صدوق فلحسن روز صدوق فستهی ما قبل از این نداریم آنه در اهل سنت از قرن سوم داریم ما از قرن هشتون خوب روشنی دوت مفتن اولین که این کار کرد، علامه این موارد اینجوری در کتاب فقیق که بعضی جروعی است، در روا یک حکم گرفته اینو هم اینا از اولین باری که این تقییم اومد در روایات ما در کتاب ما، فقیدین روا و در رویه نگذاشتن. بعد از ایشون هم مرحوم صاحب وسائل، فخرنگ نوشتش مجلسی فخرنگ نوشته مجلسی پدر لشعر خمی فخ و همینجوری حساب بکنید در از ما ناالله، مرحوم استاد اون در در شرایطی نشد که فهم نمی‌گشتن، روا و رویه را یک می‌دونستن. که ما از انصافا فرق فرق بین روا و رویه هست. و یک جای مجوسی در حمیدزاد می در همین باث که میگه اینجا به سیغه رویه است و این ضعیفه اما چطور در اینجا گفته به شهر علی حسن و نسخه جو روا عبدالملک خسیب احساجه به کلمه رویه برواث که واضی بحث نمی‌شین فعلا اینجا جای دیگه واسه این یه بحث واجهه به تعبیر ایشون که به سند اهل حسن سند این روایت یعنی مشیخه در مشیخه گفته ماکان فی عبد ابن عبدالملک بن عیا اگر تو روی توسندش یک محمد ابن علی ماجیلوی از که این احتمالاً زلف صحیح ماجیویه باشه مثلا فعلا تلفظ ما ماجیلوی از مثلا این اویه یک لفظی در فارسی قدیم فارسی سره و قول آقایین که به معنای یا نسبت مثل سیبویه خالویه بابویه احتمالاً اسم ایشون هم ماه گلویه بوده ماه که بناه ماه گلم به بناه سرش تینه، نه خاک ماه گلویه که این بر اثر تعبیر تعریف شده ما این یک این آقا از مشایق صدوق توسیق نداره باقی چون از مشایق صدوق ظاهرن مرحوم علامه به لحاظهالی مرحوم مجلسی به ایشان فرمونن حسن ظاهرن به سند هل حسن نظرش به همین آیه ماچیله در در کتاب صدق داره ان محمد ابن این محمد ابن القاسم. این محمد ابن عبدالقاسم مرد بسیار بزرگواریز ملقب به از مشایخ قوم سیدم هر جای بغضم هست و ایشان به حساب در اینجا تعبیل ایشان همهی داره اون میگه در نجاشی هست ایشون جدشه اینا باعث نمی شه اینا باعث خیلی اون این با میزه سکه اونجا نه یوسف درخره این جدش یا عموشه بعضیا فرق میکنن عبارت نجاشی ماشین ببینه که اینطوره محمد ابن علی ماجیروی محمد پسر علی علی پسر محمد بن ال این محمد جد محمد ابن علیه محمد ابن علی محمد ابن علی محمد بن ال قاصه این جوریه خب اینا جدش باشه مگر اسون آیه ورگ است قالبی آذرگوزن اناموش بود مگر یک چیزی مثلا اموش حالا صدوغم چون بالاخره استادشه صدوغم قمیه بگیم صدوغم اینقدر نفر میده که خیلی عجیبه هرج داره میگن نمی خریدار نمی عبارات مرحوم ندیاشی هم واضح و لا ریوتی که ایشون جدی شه چون میگه محمد پسر پسرش محمد علیه و پسر علی محمد, محمد علیه واجلی ببین اون خیلی واضحه یعنی خیلی مطلب دو طرف و مطلب واضحه که در کتاب نجاشی جد اینشانه و در کتاب صدوق هم دائما هم میگه محمد از زیاد زنه کم نداره خب این هم راجع به این قسمت که هنوز برای ما روشن نشده مگه حالا مثلا هم جد بشه هم مثلا بی گرفته بعد از خود و برادرش نه برای جد بشه هموش بشه بی بشه کاری بات بشه بلاکنه گیری بات درست ب صاب محسن احمد برقی پسر که از جلال هم به این مبانی اندیشیش ضعیف هست اما مرد بزرگواری است و این محمد نعر القاسم داماد برقیه یعنی خواهر احمد برقی دختر برقی بزرگ پس در حقیقت محمد ابن علی ماجلیوی باذ برقیه از جدش یا از اموش محمد نعر القاسم ایشون هم از برقی که برادر زن میشه انا ابي برقي پدرم اصطلاحا بنده عرض کردم این جور احادیث در کتاب صدوق هست اینا مال احادیثی است که واسه خاندانهای علمی های علمی خاندانهای های علمی خاندان های علمی آنجوزان ما مثلا یکی میگه من نوه پسر خاندان برقی مجلسی مثلا من از پدر پدرم از سطر پدرش مثلا نسخه بدم از مجلسی هر خاندان علمی در همین لبنان که اینو تا جدا در ادیت خاندان زین که باشه یا شمس که خاندان شهید اول باشه اصلا های علمی همیشه هستن یه مقدار مرحوم صدو روایاتی رو از های علمی نقل میکنه و کراراً ارز کردم که شاید یک عرف اجوالی باشه که اینها قبول بشه خوب به نظر خودت اگه به خودت ایشون از پدرش از جدش و آموز اونم از برادر خانومش اونم از پدرش اینا خاندان برقی ان برقی پدر که اصل. پسرش هست و رو نقه دختری اینا این سند حدیس تا اینجا خاندان علمی هست یونس یونسفد عبدالرحمن، الرحمان عبدالملک عبد الملک مریم خب مرمو مجلسه نشه حسن بسیش روشنه چون این سند توصیق شدن فرد مونده محمد نعری ماجیده به که چون استاد صدوقه توصیق نشده ایشون حسن قرارش داده البته ادهی هم هستن از بزرگان میگن مسحق یعنی ما این قبول داریم. صحیحه. چرا؟ چون همه اینسانت سفاتن ایفرام به خاطر شیخوقت اجازه دیگه احتیاج به توصیق نداره. مشایخ اجازه مستقنین از توصیقی. یا مثلا مشایخ صدوق مستقنین. این بحث مشایخ اجازه مشایخ صدوق سابقا متحدش شد وجه اینجا شنگیات نیست؟ دیست اینه که ادهی این حدیث رو صحیح به حسن اددهی صحیح اددهی مسحه اونی که مسحه میگه یعنی به نظر من ماجیله سغست مسحه یعنی. اونی که سنی میگه نه اصلا ماجیله سغست و من اجازه احضای به توسیق ندارم. این راجع به این حدیث پس این حدیث البته مثل مرموم استاد آیخویان نوشن ضعیفه چون شما ماجیله قبول نذارن و این شیخو اجازه ای هم کافی نمیدون پس این حدیث مابین ضعیفه و حسن و صحیح و مسحه تمام نکتم روی جناب مستطا به آقای ماجیله بکنه. این است که در اصحاب ما الهی اومنه هادا متعارف. راهی رو که ما اصولا می‌ریم البته بعدی ها بعضی اشکال کردن که این مشکلی چون عبد الملک در زمان امام صادق رفات پیدا کرده و یونوس از اون نقل نمیری. یونس سره اینوام سره اما یونس از این شخص نقل نمیکنه چون یونس از امام صادق نغمه چون رسل کی چیزی زمان امام صادق بود کردن درست این مطلب پی نفسه درسته یونس به واسه از کبار اصحاب اوی عبدالله که صادق در زمان بزرگ بودن مثل زراره و محمد بن نقل, نقل نمی کنه. از خود امام صادر هم نقل میکنه اصول خدمت امام در منار اصلی امام را از دور دیده اما به نقد حدیث از ایشون نرسیده رعاه آهو بمنا یا به حرفات بمنا حضرت و دیلی اما لم یر رعن ابی عبدالله پس عبدالملک نهر این که توفیه فی حیاته به طریق اولا لیکن این رو به نظر من میشه اجمالا یک جوابی به چون درسته یونوس امام صادق نهیده چون یک مقدارشم به خاطر بعد دو شهره شاید هم مکه را اولین باری که مکه اومده، حضرتو دیده. دیگه سفر به بعدی نفسونسته برایش در حد تعلم از امام. اما عبدالملک بن مروان در خود یعنی در خود کوفه بوده. طریقت قصه یونس می من که کوفه آمده اصحاب علی عبدالله فراوان بودن و ایده من از اصحاب امام باغر رو دیدم. از جا لذا این جور ها شما بحث طبقه ای نفرمایید که بگین ایشون چون میردن علی ابن عبدالله، اصلا میردن ابن عمر که میگن ایا. اول من بگم روایات کردی یا نکرده؟ این اشکال در ظاهرش قابل جوابه. این سفری که ایشون اجرت امام رو، نشون صحیحه حدیث ساغه سفار بعده به اون کرده بوده. این مشکل ممکن که شهرش اما وقتی در شهرش بود ممکن 9 سال از مشکل نداره یعنی این این به نظر من خیلی بعد از اینکه ایشون قطعاً ایشون و زورا رو برادر دیگه ایشون ده 10 نفرن الا ما یقال که چند تاشون هم سنین و الا این مشکل نداره این, این همون راهی است که من عرض کردم راه رجالی یک راه رجالی مشهور اون چارسی که قول گفترد یکم این که این اصلا اشکال داره ارسال داره شبهه ارسال به حسب واسطه داره اینم راه رجالی ما این حدیث رو واز از رای فهرستی وقتی بررسی بردرس میکنیم اون نتائجی دیگری میده اولا از کردیم خود ماجیلوی و پدرش رو مرموم برقی و پدر برقی اینا خاندان واحدی هستن اولا تیکیه پسرش که دامادشه خاندانش بیمنا داماده از پسره پسرم از پدره این نه نه رو کرد مشکل به نظر ما این نیست مشکل اینه که در اسالیدی که ما داریم برقی پدر از یونس نقل نمیکنه <تصفيق> اگه این مشکل بینوشتن بهتر بود یعنی من از کرد چون یونس یک شخصیت نسبتاً جنجالی بود در بغداد و البته ازش گوفه بوده و بعد هم محل کلام شد مخصوصاً قومی ها خیلی روش نظر داشتن و حتی بنا نسبت دیگه یک الفاظ قبیه ناموسی هم حتی دارن که امام راجع بیون سبته اللهم الان فلانه مازد ابن فلانه یعنی خیلی وضع خرابی کار به زیاد رسیده بود وقت از یونوس کتبی که در قب از یونوس اوردن روایاتش مختلفه نسخش مختلف بود اون که الان ما تقریبا دیدیم صدوه از ابن الولی اینهی که ما دیدیم از از اونه که با موجود در روایات هم یک چیزی در حضور پنشیش راهه ابن الولی این نسخه ما قبول داریم الا نسخه محمد ابن عیسی ان یونوس دوست شیخ محمد بن عیسی انیورس در اون چند طریقی که از یونس نرزه اسم برقی اصلا نیست مشکل کار اینه این فرق بین فهرست شما سوالی نازنا فرض فهرست رجال چیه بینه آنیون و نگاه نگاه کنید چی انگار محمد بن علی ماجلی به پدرش برقی پسر برقی پدر یونس عبدالرحمن خود خب این رجالی شد بعد آمدن باز رجالی گفتن یونس با عز ملک ابهام داره شبا طبقهش نخواده ارسال داشته باشه. بحث این رجالی بحث فهرستی این است که این معناشی است که یک کتاب یونس که برقی پدر به قوم آورده. البرقی ان یونوس ما در نوشتارهای قوم مثل کتاب مثلا کلینی فهارس از برقی ان یونوس نداریم یعنی به عبار از این اخراج این مطلب در میرازهای این خاندان علمی بوده تو جدی دیگه نبوده تو خاندان برقی این بوده تو خاندان برغی چنین مطلبی رو نهاره که مرحوم برقی پدر محمد ابن خالد از یونس نهاره البته بلا حاضر مکتب فکری و خب بلا اشکال یونس خط عقلیگرهای ماست و هر است که با اخبار به شدت بحث برخورد میکنه به شواهد کتاب و سنت برمیگرده قابل موجه خبر نیست برقی به اعت اخباری یعن زعطای یعنی اصلا خیلی با هم روی بعد فکریش برقی و یونس در دو خط فکری کاملا دور از هم ها من کار را خط فکریش بزنیم کنار تصوری ببینید همین حدیث واحد به لحاظ فهرستی با مشکل روبرو میشه احتمالاً احتمالا صدوق هم همین مشکل رو داشته یا کلینی این از این را حلش میکنن که این میراث علمی خاندانه و هز کردم از بیدو و هم میراس های علمی خاندانه های علمی تا یک مقدار مقبوله خب نمیشه این کار کسی هست ظاهرم احتمالش هم ضعیفه چون نداریم ما اون خیلی زنید چهاری فرید تعدیش شبایی بود اون هم الان شاهد نداریم یعنی ما در انتقال میراث برقی بخون و مشکل دیگه مرحوم به اصطلاح صدوق تقریبا معدود یعنی حدود 20 خورده مورد در کل فقی از یونس نعبو میکنه در مشکل طریقش هم به یونس نداره این هم یا مشکل دیگه یعنی ما دقیقا نمیدونیم برقی مرحوم صدوق این چند مورد رو که از برقی نرده از کجا نرده کرده؟ از چه نسخه نرده کرده؟ اما یه عبارتی از ابن ولی استاد صدوق در دست هست ایشون نسخ رو گفته هم به یک مناسبه در کتاب مرحوم شیخ صدوق توسی است در فرز که هم فرز نجاشی ترق ریو برده ناشته کتب یونس و درد علتی در روایت روایت در اینجا نسخ نسخ کتب یونس و در رحمان. این نصحش صریحاً معتمدون علیها الا ما كان بيان محمد بن عیسی. ما ذکر شده اسم علی بن ساله صالح بن راشد اده ذکر شده. چون اده ای که ذکر شدن اسم برقی پدر می نیست. لذا الان من می این حدیث اصلش از کجاست. حتی اسناد بدیم مثلا به کتاب یونس یا اصلا یونس گفته الان برای ما روشن نیست آیا این از تصاممات همین محمد بن علی این نوهه خیلی استاد نبوده قاکی کرده یه چیزی مثلا بردی از فرس کن این مردار مرار چیزی افتاده این احتمالات هست ما الان اتباله نمی کنیم من انس کرده وقتی بگه یکی از شوخ اجازه این وقت وقت بزرد که یک دقیقه من بگم اگر توسیق نداره قبول نمی کنی مال همین مشکله چون وقتی توسیق نداره به این معناست که شاید دقیقی نیست اشتباه کرده این مالا جدش نیست این اشتباه کرده یعنی کسی که اصفانی نگاه بکنه البرقی انیونوس عجیبه سر این تعجیم سر محمد ابن ویسا علی ماجیله بگه پس ببینید مرموم آقای خوی و زیادی که دنبال جایی این آقا توسیق نشده حدیث ضعیف اینا از این راه آمدن ما آمدیم تحلیل فهرسی کردیم به مشکل برخوردیم برقی پدر از یونوس مشکل داره. حالا غیر از مشکل یونوس انه عبدالمنده که نهگه پس اصول چندانی به این روایت پیدا نمیشه و خصوصا که مضمونش هم منفرده هیچ روایتی دیگه نداریم مخصوصا اگر از یون بود، چمود آدم ها از دیگه کنند او نهارم میکنند این را تیرین تا فرم